شنوتو با افتخار تقدیم می کند هریپاتر و زندانی آسکابان جلد سوم از مجموع داستانهای هریپاتر نوشته جی رولینگ ترجمه ویدا اسلامیه هری از بسیاری جهات پسر بچه‌ای عجیبی بود. از یک سو از تعطیلات تابستان بیشتر از هر وقت دیگر سال متنفر بود، از سوی دیگر واقعا دوست داشت تکالیف مدرسه اش را انجام دهد. اما ناچار بود به طور مخفیانه در نیمه های شب به این کار بپردازد. آخر می‌دانید، او جادوگر بود. چیزی به نیمه شب نمانده بود و او در تخت خوابش دمر دراز کشیده بود. پتوها را مانند یک چادر درست بالای سرش آویخته بود و چراغ قوهای در دست داشت تا تکالیفش را مخفیانه انجام دهد در همین زمان سه جغد پروازکنان از پنجره وارد شدند هری به سرعت روی تخت پرید و ها را از پاهای ها باز کرد در هر سنامه تولد هری تبریک گفته شده بود یکی متعلق به ویزلی بود که در آن نوشته بود خانوادهش به جهت تشویق پدر ویزلی از سوی وزارت صهر و جادو قرار است یک ماه به مصر بروند. هدیه ویزلی یک دشمن یاب بود که به محض نزدیک شدن به دشمن به صدا درمی آمد. هدیه هرمیون اما جعبه‌ای بود با ابزار تعمیل و تنظیم جارو. هدیه بعدی از آن هایگرید بود که کتابی آسا و وحشی برای او فرستاده بود که به محض دست زدن شدیداً حمله میکرد. نامه نیز زمینه اینها بود که از هری میخواست تا برای سال تحصیلی جدید خود را آماده کند. آقای پتر عزیز، خواهشمند است توجه داشته باشید که سال تحصیلی جدید از اول ماه سپتامبر آغاز می شود. قطار سری و سیر رأس ساعت یازده از سکوی 9 حرکت خواهد کرد. دانش آموزان سال سوم می توانند در برخی از تعطیلات آخر هفته از دیکده هاگزمید دیدن کنند. خواهشمند است برگه رضایتنامه زمین شده را به امضای والدین یا سرپرست خود برسانید. فهرست کتاب سال جدید زمینه این نامه است با تقدیم اعترامات پروفسور مکگونگال معاون مدرسه هری برگی رضایت نامه حگمید را درآورد و به آن نگاهی انداخت گردش در حگمید در تعطیلات آخر هفته عالی بود میدانست که آنجا یک دهکده کاملا جادوی است ولی هنوز به آنجا نرفته بود چطور ممکن بود تواند مووررنون یا خالپتونیا را راضی به امضای رضایت نامه کند صبح روز بعد، هری برای خوردن صبحانه پایین آمد و ها را در آشپزخانه سری میز صبحانه دید. آنها مشغول تماشای یک تلویزیون نو بودند که به مناسبت شروع تعطیلات تابستانی به دادلی هدیه کرده بودند. دادلی بیشتر تابستان را در آشپزخانه گذرانده بود و در تمام مدت چشم‌های ریز خوکمانندش خیره به صفحه تلویزیون و قبقب پنج طبقه‌اش در حال جنبیدن بود. هری بین دادلی و اموبرنون نشست. آنها کمترین توجهی به ورود هری از خود نشان ندادند. وری که به این گونه رفتارهایشان عادت کرده بود، اصلا ناراحت نشد. یک برش نان برشته شده برداشت و به تصویر گوینده اخبار بر روی صفحه تلویزیون نگاه کرد که در حال خواندن گزارشی درباره یک مجرم فراری بود. بلک مسلح و بسیار خطرناک است. از همه شهروندان خواهش به محض دیدن این مجرم فراری مراتب را به پلیس گزارش کنند. امو ورنون فنجان چای را سر کشید. به ساعتش نگاهی انداخت و گفت: من دیگه بهتره برم. قطار مارج تا ده دقیقه دیگه میرسه. هری که افکارش در طبقه بالا پیش ابزار تعمیر دسته جارو بود، با شنیدن این جمله به خود آمد و بی مقدمه گفت: امه مارج، بیاد اینجا؟ مارج خواهر اموورنون بود با اینکه هیچ نسبتی با هری نداشت هری را از اول عمرش مجبور کرده بودند او را عمه صدا کند معمولا مدت زیادی در خانه دورسویها نمی ماند زیرا نمی توانست دوری از سگهای گران و آیش را تحمل کند با این حال خاطره وحشتناک تک تک دیدارهایشان در ذهن هری به یادگار مانده بود در جشن تولد پنج سالگی دادلی وقتی هری برای گرفتن عروسک موزیکال دادلی او را میزد، امه مارج با عصایش محکم به ساق پای هری کوبیده بود. چند سال بعد در شب کریسمس برای دادلی یک آدم آهنی کامپیوتری آورده بود و برای هری یک جعبه بیسکویت مخصوص سگ‌ها. اما ورنون با عصبانیت گفت: "مارج یه هفته اینجا میمونه. حالا که هر پش پیش پیش بهتره همین حالا تکلیفمون رو با هم روشن کنیم. اول اینکه باید با اون مؤدب باشی. دوم اینکه چون مارج از ناهنجاری تو چیزی نمیدونه" تا وقتی اینجاس باید مواظب رفتارت باشی و سومی که ما به مارچ گفتیم تو رو مرکز ویژه پسران مجرم ناسازگار پرستادیم هری فریاد زد چی اگه غیر این حرفی بزنی تو دردسر چه؟ امو اموورنون آماده رفتن شد و هری در خلصهٔ وحشتناکی فرو رفت اما نادان فکر بکری کرد به سرعت از جایش برخواست و به دنبال اموورنون به طرف در ورودی خانه رفت و گفت سال سومیا تو مدرسه ما بعضی وقتا برای گردش میتونن دهکده برن اموبرنون دست کلیدش را از قلابی در کنار در برداشت و گفت خب که چی هری شتاب زده گفت میخوام برگه رضایتنامه رو امضا اما اموبرنون پوسخندی زد و گفت چرا باید چنین کاری کنن؟ هری با دقت کلماتش رو انتخاب کرد و گفت خب برام خیلی سخته که جلو ام مارج مود کنم به اون مرکز نمیدونم چی چی رفتن اینقدر طولانیه که یادم نمیمونه اموورنون مشتش را بالا برد به طرف هری آمد و نعرزد اون وقت حساب تو میرسن اما هری از جایش تکان نخورد و با قیافه در گفت اما اگه برگه رضایت نامره امضا کنین هم اسم مدسر یادم میمونه هم گول میدم مثل آدم عادی رفتار کنن هری با وجود دندانهای برهم فشرده و زربان شدید نمز بر روی شققه اموبرنون اطمینان داشت که او در حال سبک سنگین کردن این موضوع است سرانجام با بدخلقی گفت باش تو مدتی که مارج اینجاست من با دقت رفتارت زیر نظر می گیرم. اگه تا آخرش دست از پا خطا نکردی و قضیه را لو ندادی اون وقت اون برگه مذخرفتو امضا میکند سپس دور زد و در ورودی را باز کرد بعد چنان محکم آن را به هم کوبید که یکی از شیشه های کوچک بالای آن از جایش در چه بیشتر امم مارچ در آنجا احساس راحتی میکرد هری بیشتر به رفتن او فکر میکرد امم مارچ از مقایسه هری با دادلی لذت میبرد برای دادلی حدیه های قیمت میخرید و در مقابل با حالتی خسمانه به هری نگاه میکرد در تمام مدت نیز درباره اینکه چرا هری اینقدر بد بار آمده اظهار نظرهای وحشتناک میکرد روز آخر اقامتش هنگام صرف شام گفت دادلی. تو هم مثل پدرت مرد خوشحیکله میشی بعد رویش را رو به طرف هری برگرداند و گفت اما این یکی خیلی ضعیف نایفه بعضی از سگاه هم یک یه سال پیش از کلنل فابستر خواستم یکی از سگا رو ببره بکشه آخه خیلی درب و داغون بود هم ضعیف بود هم غیر اصیل. هری می‌کوشید صفحه دوازده کتابش را به یاد آورد افسونی برای تعمیر دنده اقم امه مارج ادامه داد همونطور که اون روزم گفتم همش مربوط به اصل و نسبه. پتونیا فکر نکن میخوام به خانوادت توهین کنم. توی هر خانواده یه نفر اینجوری میشه. بعدم با اون عوضی عروسی کرد که نتیجهش الان جلو رومونه. هری به بشقابش خیره شده بود و سعی میکرد درسایش را مرور کند. صدای امه مارج مثل صدای یکی از مدتهای امو ورنون در گوش هری ناخوشایند و آزاردهنده بود. امه مارج جرعه از نوشابش نوشید. چانش را با آستین لباسش پاک کرد و گفت: پدرشم یه تنبل بیکاره‌ی حق‌باز ناغان حری گفت به هیچ اینطور نبود. همه ساکت شدند. تمام بدن حری می‌لرزید. در تمام عمرش هیچ وقت اینقدر خشمگین نشده بود. عمو که رنگش مثل گچ سفید شده بود، رو به حری کرد و با حالت غضبناکی فریاد زد: آی پسر! دیگه برو بخواب زود باش امه ماج آروغی زد دستش را بالا آورد و در حالی که با چشمان ریز و سرخش به زل زده بود گفت نه وینون بذار ادامه بده پسر ادامه بده به پدر مادرت افتخار میکنی اره حتما وقتی تو اون تصادف کشته شدن مست بودن هری از جایش برخاست و گفت اونا تو تصادف نمردن. امه ماج که از خشم برافروخته شده بود فریاد زد ای دروخ خوی بد جنس اونها تو تصادف مردند و تو رو دست بستگان آبرومندشون گذاشتن. حالا تو نمک نشناس بیهیا امم حرفش را ناتمام گذاشت به نظر میرسید تمام وجودش از خشم وعص ناپذیری پر می شود و باد میکند. صورت بزرگ و سرخش شروع کرد به کش آمدن چشمای ریزش بیرون زد و دهانش طوری کش آمد که قادر به حرف زدن نبود لحظه دیگر دگمه های ژاکت راه راهش در اثر فشار کنده شد و جرینگ جنینگ به در و دیوار کرد. مثل یک بادکنک غولاسا بزرگ و بزرگتر میشد. وقتی اگل ام مارج از صندلی جدا شد و به سوی سقف حرکت کرد، اموبرنون و خالپتونیا یک صدا فریاد زدند مارج. حالا دیگر بدنش گرد گرد شده بود و همانطور بالا می‌رفت. اموبرنون یکی از پاهای مارج را گرفت و سعی کرد او را پایین بکشد. اما خودش هم از زمین بلند شد هری قبل از آن که کسی مانعش شود به اتاقش رفت وسایل و چمدان و قفسا ادویگ را برداشت و از خانه بیرون زد اموبرنون فریاد زد برگرد اینجا بیا اونو به حال اولش برگردون اما هری از خشمی جنو نامیز لبریز بود در چمدانش را باز کرد چوب دستیش را بیرون کشید و به سمت اموبرنون نشانه گرفت بعد با نفسهای گفت: حقش. بلایی که سرش مد حقش بود سعی نکن جلو منو بگیری لحظهای بعد هری در خیابان تاریک و ساکت بود پس از گذاشتن چند خیابان به دیوار کوتاهی برخورد کرد و روی زمین افتاد. در اثر کشیدن چمدانش به نفس نفس افتاده بود. آرام نشست هنوز وجودش از خشم در جوش و خروش بود و به صدای تپش دیوانه‌وار قلبش گوش می‌داد. پس از ده دقیقه تنها ماندن در آن خیابان تاریک، احساس دیگری وجودش را فرا گرفت. وحشت. هرگز در چنین مخمصه ای گرفتار نشده بود. تک و تنها در دنیای تاریک مشنگها درمانده شده بود و هیچ جایی برای رفتن نداشت از همه بدتر اینکه دست به جادوی بزرگی زده بود و بدون شک از هاگووارتس اخراج می میشد او قانون ممنوعیت جادوگری برای افراد زیر سن قانونی را زیر پا گذاشته بود و تعجب میکرد که نمایندگان وزارت سحر و جادو همانجا بر سرش نازل نشده بودند آیا او را دستگیر میکردند یا فقط از دنیای جادوگران ترد میشد. در خیابان پرنده پر نمی‌زد و در هیچ یک از خانه های بزرگ و چهارگوشان چراغی روشن نبود. صدایی نشنیده بود، اما احساس میکرد کسی یا چیزی در فضای باریک بین پارکینگ خانه و نرده پشت سرش ایستاده است. دزدکی به خیابان تاریک نگاهی انداخت. اگر آن موجود تکانی به خود میداد حریم میفهمید که آیا یک گربه ولگرد است. یا چیز دیگری است هری آیسته گفت اونست از انتهای چوب دستیش نور خیره ظاهر شد چوب دستی را بالای سرش نگه داشت و دیوارهای سنگی خانه شماره دو روشن شد در پارکینگ می درخشید و در فاصله باریک بین آن بدن یوغور یک موجود بزرگ را با چهرشمای درخشان به وضوع تشخیص داد هری عقب اقب رفت پایش به چمدان گیر کرد سعی کرد با دستش مانع افتادن خود شود اما چوب دستیش به گوشه ای پرتاب شد و خودش به درون جوی آب افتاد. هری صدای گوشخراش شنید و فورا در مقابل نور خیره کننده دستش را سایبان چشمایش کرد. هری فریاد کشید و درست به موقع خود را به پیاده رو رساند. لحظه ای بعد یک جفت چرخ گولاسا با نوری خیره کننده و صدای گوشخراش درست در همان نقطه ای که چند لحظه قبل افتاده بود متوقف شد سرش را بلند کرد و متوجه شد که ها متعلق به اتوبوس سه طبقه ارغوانی رنگی است که یکهو جلواش ثبت شده بود بالای شیشه اتوبوس با حروف طلایی رنگ نوشته بود اتوبوس شوالیه در لحظه کوتاه هری فکر کرد بعد از آن سقوط ناگهانی عقل از سرش پریده است سپس کمکراننده که لباس فرم ارغوانی به تن از اتوبوس بیرون پرید و با صدای بلند شروع به صحبت کرد به اتوبوس شمااله خوشمدین اتوبوس شوالیه وسیله حمل و نقل ویژه جادوگرای درمانده است کافی چوب دستی کود جلو بیاری و سوارشی شما را هر جا بخوای میرسونیم اسم من استن شانپایکه. هری سوار شد و اتوبوس به آسمان رفت استن نسخه از روزنامه پیام امروز را جلویش باز کرده بود و غرق مطالعه بود عکس بزرگ مردی با چهره معیوس و موهای بلند و در همگره خورده از روی صفحه اول روزنامه آهسته به هری چشمک زد. ریافهش خیلی آشنا بود. هری لحظه ای مشکلاتش را فراموش کرد و گفت این همونه که توی اخبار مشنگا بود استندین نگاهی به صفحه اول انداخت و با دهان بسته خندید. بدتری تکان داد و گفت این سیریوس بلکه مگر از پشت کوه اومدی؟ بار دیگر به قیافه مات و مبهوت هری خندید بعد صفحه اول روزنامه را رو جدا کرد و به دست هری داد و گفت باید بیشتر روزنامه بخونی. هری روزنامه را رو جلوی روشنایی شمع گرفت و شروع به خواندن کرد بلک همچنان آزاد است وزارت سحر و جادو امروز اعلام کرد سیریوس بلک بدنامترین زندانی قلعه آسکابان هنوز متواری است کون نیوز وزیر سحر و جادو صبح امروز اظهار داشته تمام تلاششان بر این است که بلک دوباره دستگیر شود به مشنگ ها دادند که بلک اسلحه دارد اما در جامعه جادویی این وحشت وجود دارد که یک کشتار جمعی مانند کشتار دوازده سال پیش به بغو به پیبندند. در آن زمان بلک با یک افسون سیزده نفر را در جا به قتل رسانید حریب چشمای تیره سریوس بلک تنها از به صورت افسردهش که زنده به نظر میرسید خیره شد هری هرگز یک خوناشان را از نزدیک ندیده بود فقط تصاویری از آن را در کلاس دفاع در برابر جادوی سیاه مشاهده کرده بود و بلک با چهره رنگ فریده با ماتش درست مثل یکی از آنها بود تا بخش بعدی این پادکست باشید www.shenoto.com